شناو که هورای مزده به هو و اشتم هستی حوشتاو هستی حوشتا یدشای و با عشم به خوشنوری هورا خداوند جان و خرد و با درودی دیگر بر روان و فرغره اشوزر تشت اسپنتمان این بزرگ بخش و آمزگار آموزگار زمان و با درودی دیگر باره و گرمتر بر همه شما دوستان همکیشان همیهنان هم اندیشان دانشجویان و دانش که از چهار گیتی به این نشست آموزشی اومدید و یا هر زمان که از راه رادیو رادیو زرتشتیان و اینترنت به باز این برما گوش میکنید اومدید تا بیشتر و بهتر از دین و بینش و آین و بینی و فرزان و فرصفی زرتوشتی مزدی هستنی آبایی پیدا کنید دانش و بینش خود رو افسون کنید و اگر اون رو راست و درستینید و دریافتید گونه که هست اون رو برای خود بگذینید پیش گیرید زندگی کنید و گسترش بدید همچونکه اشو زرتش فرمود پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید سپس هر مرد و زن از شما برای خویشتن از میان این دو راه برگزینید این آین را پیش از روز بزرگ نیک دریابید آگاه شوید و آگاهی دهید خب دفتار امروز شنبه دیگر و روز اشتاد هست و ماه مهر و سال سه بر اساس گاهنامه زرتشتی روز اشتاد که از همون واژه اشعه میاد که به همون معنای راستی و درستی هست و در زمین امروز هم روز نخست گاهانبار چهره ایاس رمگاه هست خب پبشه ما بیشترتون آشنایی دارید اگر کسی آشنایی نداره گاهانبارها ها جشن هایی هستن فصلی هم میشه گفت جشن های دینی هستند هم جشن های گفت من در مورد جشن ها به طور کلی در پایان این سخنان امروز یک گزارشگونهی خواهم داد به هر حال گهانبارتون خوجسته باد و این گهانبارها معمولا پنج روز به درازا کشته میشده جهر جشن های پنج ما زیاد داشتیم و گامبارهام هم همچنین و این ایاز گاه هم به ویژه در آغاز زمستان هست ایاز ریما یعنی ناروانه شدم یا نرفتم که معبولاً چون زمستان بوده و زمان سرما و برف و سختی میماندن در منز آنجایی که بودن در خانه هاشان و خب حتی این رو هم باز پدران و مادران ما در موردش جشن میگرفتن که در مورد جشن و اینها همجره گفتم سپس بیشتر صحبت خواهیم خب اول ایزه بدین ادامه بدیم ما همجره که همیشه هم تکرار کردم تو این چند بار ما از بونمایه ها از پایه ها و از اصول شروع کردیم و اینها رو باید اینقدر بگیم هم به خودمون بگیم به خودمون آموزش بدیم و هم این رو به گوش دیگران تا این که آرام این پایه‌ها ها و این ریشه ها و اصول درونمون جایگزین بشند به قول قدیم ها افتن ملکی ذهنمون بشه و در واقع اون دریچه ای هست که از اون دریچه ما جهان رو نگاه میکنیم و به قول معروف همه چیز رو تربیه تفسیر میکنیم و طبیعی به نظر من یکی از هم ساده‌ترین و هم رفترین و هم درست ترین دیدگاه که آدم میتونه به جهان هستی و به خود داشته باشه ببرمان انسان و جهان پیرامونش خب ما آغاز کردیم دوستان از او مصدر و گفتیم که با ویژگی‌ها یا صفاتش اورا مصدر رو می‌شناسیم که در واقع این ویژگی‌ها که ما به امشاست پندان هم, هم می‌گیم اینها هم او مصدر و خداوند رو برای ما بادشناسی رو میکنه هم انسان رو و هم جهان هستی بنابراین باز گفتم بلمایه ها هستند از سپنتا مینو و سپنتا مینو آغاز گردیم و گفتیم که سپنتا مینو اون ویژگی یا گوهر و ذات افضایندگی و پیشربندگی و آفرینندگی و دیگرگونی هستش که در او را مذا و در هستی هستش و از راه اون می آفرینه و پیدایش میده و شکل میده. و این آفرینندگی در اندیشه ن یا وحومن مذا شکل میگیره تصویر پیدا میکنه و ما هم با کمک وحومن خودمون بحمن خودمون هست که به این دید و بینش از هستی می رسیم و در میادیم و میفهمیم، که همه این آفرینندگی و جابجایی و افضاش شده گردونین اینها بر پایه و هماهنگ با یک قانونمندی کلی و نظم و هنجاری شکل سامان میگیره که بهش میگیم ارتا یا عشا پس به هومنه رو گفتیم و امروز می‌رسیم به این که اون چه نیرویی هست که در پشت این پیشرفت و سازندگی قرار داره و نیروی کارکنش هست یعنی اون نیروی فعال و در واقع به همه همین چیزها که ما بهش میگیم خشت را یا خشت و ایریا یا شهریور قروم شهریور شهریور این است اون که به اون گاهی گفته میشه شهریاری یا شهریاری اهورایی یعنی چی یعنی اون نیروی سازندگی و آفرینندگی باز اهورا مزدار. اه واژه خشتر از ریشه اوستایی خشی میاد خشی یعنی ساختن آباد کردن ما واژه داریم خشت خب خشت بر خشت مینامیم و می‌سازیم خشت یعنی همون نخستین سنگ بنا و یا کوچکترین پایه و مایه و عنصر سازندگی از این خشت‌ها واژه‌های مثل شهر شهریار، خشایار، شاه و مانند اونها ساخته میشه که پس شهر, شهر یعنی جای آباد و شهریار یا شاه کسی است که شهر بسازه یعنی چی؟ یعنی آباد کنه و این آبادگردانی هم بر پایه های وحومن و عشاست یا چی؟ اندیشه نیک و راستی و درستی و هم اندازگی و هماهنگیه در واقع نیروها نیروهای اجتماعی در اینجا این گردانی اجتماعی میتونه شکل بگیره حالا این در اجتماع بود در بصرا خود انسان از ما که ها رو مانند همه یعنی نوی هم تو انسان در خودش میتونه نگاه کنه در تنش، در روانش و در هستی بزرگ در در انسان این گونه میتونیم بگیم که انسان در پی اون خداگاهی و گیری از وحومن و خرد نیک و عشایزیستن توی چطور به اونجا برسه که نیروهای تنی بر روانی خودش رو هماهنگ کنه به یه نظم هنجاری برسنه و در واقع اونها رو در اختیار و چیرگی خودش در بیاره به گونه ای که میشه گفت و اون هوا و حوث های نفسانی خودش چیره بشه تصنط پیدا کنه کنترل پیدا کنه این چنین چیرگی یا فرمانروایی بر خود رو میتونیم به گونه ای همون شهریاری اهورایی هم بنامیم بدین چم که این فروزه خداوندی در انسان به کمال خودش میرسه رفتار و کردار چنین انسانی انسان با دیگر انسان ها از روی خرد و با آرامش و بینش درست است و به ای دیگر نگویی نیک کردار می شود پس از یک سو دیگر یکی از معنی های خشترا همون نیک کرداری است که از اون اندیشه نیک به اون آغاز میشه. حالا نیک گفتاری که در واقع بعد از اون میاد با خودش هست در اینجا به نیک کرداری میرسه که این گونه نیک کرداری ساختن و آباد کردن رو به دنبال میاره پس خشت را اون گامهی هست، اون مرحلهی هست که هم برای انسان و هم برای جامعه انسان آبادانی میاره در این رابطه، در رابطه با خشت را وعی حالا بگم که این وعی ای یک واجهی هست که ریشش هست ورد ور رو ما در، از جمله در باور داریم خب باور این ور در جاهای دیگه هم میگوند مثل فرابهر ور یعنی انتخاب کردن گزیدن و ایریه یعنی برگزیدنی انتخاب کردنی در خیلی از جاهای عوستا این واژه خشت و ایریه یک وحو هم در جلوش میاد مثل وحومنه اینجا میشه وحو خشتر ایریه وحو که گاهدید یعنی خوب و نیک وعیریه برگذیدنی خشتر شهریاری پس وحو خشتر وعیریه میشه شهریاری خوب برگزیدنی این چیست این سیستمیست که انسانهای با اندیشه و گفتار و که دارنیک دست دست هم میدن و آن نیروی خوب رو از میان خودشون بر می و برپاش میکنن و در واقع مسئولیت رو به اون شهریاری خوب برگزیدنی میدن تا شهر و جامعه و زندگیشون آباد گردانه و سامان بده و در اون سامان خوبونیک به پیش بدن. خب تشاتران گفتیم تا اینجا ما از سه تا امشااستند وهمان اشابو حسাত্র یا بهمن اردی بهشت شهری و گفت این سه تا ویژگی اون نیروهای راست و درست گرداننده و پیش برنده هستند که میخوان با خینه امسان انسان رو به یک سوی به پیش ببرند و به یک نتایجی برسونند حالا از اینها چه نتیجه هایی گرفته میشه چه پیامدی از اونا میاد چه حودهی حوده یعنی نتیجه چه حوده هایی از اینا میاد بیرون که این اون بقیه همچه هستندانه ها رو میخوام آغاز کلیمه این نتیجهی ای که از اون ستای نخست گرفته میشه یک چیزی هم جالب که را بکنم که حتی از دیدگاه واجه شناسی این سه نخستین و حومن و, و خشتره، اینها به اگه بخواهر نرینه هستند و ستای بعدی که پشترش میان آن مادینه هستند یعنی به یک گونه هم اون برابری و دادگری حتی در اینها در نمادها و سنبولها هم در واقع رایت میشه. خب نخستین پیامد رو که پس از خشب را ما میاریم بهش میگیم سپنتا آرمیتی یا سپنتا آرمیتی یا همون اسفند و اسفند خودمون که این سپنتا رو در چند جا گفتیم از جمعه در اسپنتا مینیور که گفتیم یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که اضافه میشه افزایش بگاه میکنه اسپنتا هست اکسپنسیف هست آرامه ای خب این رو هم برگردن های بنابونه کردن ولی شاید همون نزدیک تعینش همون آرامش می کنیم بگیم که همون آرامش هست خب آرامشی که افزاینده است. آرامشی که با خود می افضاید و معنی های دیگه هم که روش درسته یعنی مهر و فروتنی و عشق در واقع بیچشلاشت اگه بخواییم بگیم اینا هم همه توی شم مانای آرمیتی هست پس سپنت آرمیتی یعنی آرامش افضایت در هستی در آفرینش سپنت آرمیتی اون ویژگی هستش که در هماهنگی و اون سامان اشایی به وجود میاد یعنی در نظم خوب آرامش هست و هفت در انسان هم میتونیم بگیم انسان هنگامی که به خشت رسید یعنی بر خودش چیره شد و به اون آگاهی بالا رسید و با پیروی و هماهنگی با قانون به سامان و هنجار در نیروهای تنی و روانش دست را کرد طبیعی و ساده پیامدش این میشه که انسان نیک کردار میشه مهربان میشه شاد خوب و شادزی میشه کلن انسانی که به این همین نیرو در درون خودش دست کرده باشه نخست که در درون خودش یگانه میشه اون چند گانگی ها و اون تضادهای درونی از بین میره و جای خودش رو به یک, یک رنگی و یگانگی درونی میده و این یک رنگی و یگانگی اولین پیامدش یک شادی جرف و درونی است که شادی شادی که از درون میاد شادی ظاهری و برونی و به قول مره خنده های مصنوری نیست که به راستی از درون میاد خب این انسانی به همه مه میبرزه و خوشنودی خودش رو در خوشنودی دیگران میخواد این حالت آرامش رو انسان پرید میاره که درون همه چیز برای پیش رخت روزفسون و میشه گفت شتاب گیرنده به سوی اون چیزی که ما بعدم بشمیدیم خرداد امرداد یا رسائی و بیمرگی و جاودانگی فراهم میاد که اونو برد بشمی پس سپنت آرمیتی اسفند نمودار این پیشرفت در آرامش و مهر هستش خب پس از سپنت آرمیتی گفتیم و این در واقع این روند این فرآیند تکاملی تکامل یعنی اینکه چیزی که همیشه بهتر و بهتر میشه و پیشرفت میکنه این بهتر و بهتر شدن و پیشرفت کردن رو در این فرهنگ بهش میگیم حور و حور و تات یا خرداد که در درون خودش هم باشه این و که همون هر ازش میاد هر یا همه هر چیزی که همه سویه بشه همه گیر بشه یعنی از تمام جهات از همه سو خودش رو بهتر و بهتر کنه و در نهایت به تکامل برسونه اینه بهش میگن هارووتا یا خورداد اون حالتی است در انسان که تن و روان در ساگه اون آرامشی که آرامش به دست اومده به سوی تندرستی و توانایی و خداگاهی کامل پیش میره و کمیه ها رو و کاستی ها رو از خودش دور میکنه تا به بهترین حالت خودش برسه اون بهترین حالت چیست؟ زیستن در شادی و خوشمولی و آرامش راستی خب حالا همین اندیشت گنبار کنیم که این حد نهایت پس این و تکامل چی است؟ این اون چیست که در این فرهنگش میگن امرتات امرتات یا دیمالگی و جابدانگی و همیشهگی و دیرپای برای کسایی که نمیدوند فقط بگم که این واج امرتات یا مرداط رو خب از اون به اصطلاح اون نادرستی‌ها یا غلطاتی که خیلی رایجه است که ما مرداط ایدیش میگیم درست شب وارونه شده مرداط یعنی مردن از مرگ میاد و این ا که اون پیشوند نایی کردن یا پیشوند نفیه به قول معروف هست که در آغازش میاد اون رو باونش میکنه یعنی نامیرایی و جا بدانه فرامون باشه که اگر ما زندگی رو و مرگ یا بر زندگی بهتری بگیم برتری میدیم بهتری که بگیم همون داد باز اینجا یه گلیزی بزنم گفتم نازندگی چون ما درون در این واژه ها هم مرگ رو داریم هم نازندگی رو داریم که این تو تاییده گراغون هستن مرگ را در گذشت آن چیزیست که در پایان زندگی طنی و جسمانی بهش میرسیم ناز یعنی که زنده هستی اما زندگی نمی کنی. یعنی اون کیفات درست رو برای زندگی درست نداری که اون نا زندگی از مرگ هم بده پس ما از نااز هم میخوایم دوری کنیم از دید فلسفی این امرداد بذارید اینو یه خواهی بیشتر توضیح بدم چون در مورد در پرس شاه هم همیشه میاد می که خب این امرداد یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم یه نمیره مثلا هم بگم ببینید دبینید گفتم اینها هم یه دیدگاه فلسفی است از توضیح بناست همین که در در سطوح مختلف هستی میشه اینو تعدیرهای گوناگون کرد بیایم در چند رده در چند سرد به این نگاه کنیم یکی بیایم اون نخستین و پایهی ترین شکل هستی رو اگه بخواییم نگاه کنیم یعنی یک دانه رو یک تخمر بریه یک اتم، یک مولکول، یک سلول خب اگه به این نگاه کنیم میدونیم که هم براساس دانش که برای اصاف قانون هستیم هر دانهی در خودش دو نیروی همیستار یا غارون هم یا زده همو داره که در واقع تطمیم کننده همهن یعنی با کنش و واکنش و کش و واکش که با خودشون دارند باعث یک پیدایش دیگه میشن یا یعنی آفینش میشن یعنی از درون یک دانه دانه دیگری به وجود میاد یعنی که خود دانه راست و مستقیم تبدیل به یک دانه دیگری میشه یعنی که این دانه به زمین میفته کاشته میشه رشد میکنه و حد نهایت تکاملش رسیدن به نانه های دیگریست و اون دانه خود باز دوباره به زمین میاد کاشته میشه از نو یعنی این چرخه زندگی و سیکل زندگی که میچرخه ولی در عین چرخیدن به پیش میره. اینه ما اینو بهش میگن بیمرگی جا و نو شدن همیشگی تازه شدن همیشگی روز از نو روزی از نو این امونداد است حالا که دیگه نگاه کنیم اگر از دید تنی و جسمانی نگاش کنیم آیا اینکه واقعاً واقعا خب ما راستی میتونیم به جایی برسیم انسان که این حتی این تن هم دیگه فرسوده نشه نمیره شاید چرا که نه میدونیم که دانش همکنون هم در کار نوسازی هست نوسازی سلول ها و ساخت این چه بهش میگیم سلول های جنینی حالا این درست هست نیست هیچ نوع دابری در موردش نمی کنیم انسان،, انسان آفریننده انسانی که آفرینش احورهای درش هست در این راه داره به پیش میده حالا به کجا انجامد؟ خدا دانه هد از دیگه از دید روانی نگاه کنیم یا می که ما باور هستیم به هر که و مرکتن پایان کار نیست انجام نیست بلکه آن چیزی به جا میمونه که نام روان رو برش ما داریم اوروانه که این روان هم میشه گفتش که بگونه گونه‌ای که روان هست و این ادامه داره و میرود هم اوروان از ریشه اروور یا باز به همان معنای گسترش پیدا کردن روش کردن میاده یعنی این،, این هستی که همیشه داره به پیشینده این تمام شدنی نیست خب حال از یک شکل از یک شکل نیرو به شکل دیگری دیگرگون میشه ولی به رفتن و روان بودن خودش ادامه میده پس اینجا هم به گونه ای از دید روانی ما امادات رو آ، آ داریم و میبینیم از یه ریدگاه دیگه هم میتونیم در زندگی گروهی اجتماعیمون بهش نگاه کنیم. یکی که خب فرزندان ما که اگر در برحال در تندرستی کامل باشیم و به گونه این مشکلی نداشته باشیم اون فرزندانی که از ما خواهند اومد که بار و برو تخمه ما هستند و به گونه ای پدر و مادر رو هم در خودشون دارند میش گفت به دری راه و شیوه طبیعی اونها رو ادامه میدند و در فرزندان خودشون روان میسازند این هم نامیایی است و سرجامون که اگر کسی اون زندگی درست و بهمنشانه رو و نیکر در رو داشته باشه یا به گونه ای از راه نیکرداریش نام نیکش میماند و یا در درون آفریده های خودش حالا این آفریده ها میتونه یک, یک کار هنری باشه میتونه یک کتاب باشه یا هر چی حال از درون این ها و از راه اینها ها نامنی که انسان هم به میمونه خب همه این در درون این امرتاته یا امرداد میشه جای داد یک نگاه دیگه میکنیم و اینو به پایان می‌رسونیم و اون نگاه اگه بخوایم بگیم نگاه این جهانی مقداری بیشتر از این زنگی این خداد امرداد وقتی با هم میاد میتونیم بگیم که یک شادزیوی و یک با خوشنودی زیستنی که دیرپاه هست همیشه بیست انسان اگر به طور ایدئال به قول بتونه در اون حالت بباند خب این شادی در اونش هم دیرپا خواهد بود و همیشه دی خواهد بود پس خورداد مرداد همانا خوشنودی و دیرپاییست است. خوب اگر اجازه بدین الان یک نیم ساعتی رو گذشت و درخواست میکنم از سامانگر گرامی اگر شدنی نیست موزیکی برای ما پخش کنند تا بعد ما به سخنان خودمون ادامه بدیم سپاسگزارم بفرمایید بسیار هم زیبا بود و دوستان یک دوه دیگه بذارین اگر آوال من در اتاق هست سامنگ گرگرانی سپاس گذارد دوستان چند من این موزیک هایی هم که این وسط برحال پخش میشه در کنار این که شادیست و شادی آوره درون همه اینها هم هم آموزش هست هم پیام هست که امیدارم به دقت اینا رو گوش بدید و از راه اونها هم بیا آموزید و بیا آمودید آره دوستان به هر روی تا اینجا من تمام این در واقع شش همشاست بند که با خود اوورا مزده اگر بخوایم بگیم هفتم شاسبند میشن برای گفتم عبتی خب همچی گفتم خب به این صورت از رو در گاته هاش حال ها رو طلاقه بندی نکرده و ما در واقع اینها رو به این صورت از اون تو میکشیم بیرون یک سری ویژگی های دیگه هم هست که میتونیم اونها رو به بونه همجز به این بونها و ریشه ها و پایه ها بگذاریم که من خیلی از یکی دیگه از اونا نام میبرم که به گونه مهم هستش جالب هستش و اون, اون چیزی هست که ما بهش میگیم سروش سروش یا سرهوشه خب اولای اینکه این سرهوشه یا سروش از ریشه سروا میاد یا سرود میاد همون چیزی که ما از سرود رو از توش در میاریم سرود یعنی یه چیز شنیدنی و سروا هم یعنی شنیدن و اینجا منظور مفهوم شنیدنیست است درونی آوای درون گفته میشه آن چیزی که از درون اهورایی خودمون میاد و ما رو راهنمایی میکنه خب راه نمایی برای آگاه شدن از خودمون به از هستی آگاه شدن از راه های افزایش و بالندگی زندگی و دوری جستن از باز همچنی گفتم از نازندگی یا حتی پاد زندگی یعنی ضد زندگی از اینا دوری باید کرد از همین روز سروش که در مفهوم های دیگری مانند فرمانبردی خداایی بهش میگن حتی در جایگاه فرشته گونه بودن میذارن فرشته پیام آور میانه خدا و انسان که اینها یک تصویرها و یا زندها و گزارش‌های گوناگونی هست از این از یک است از یک بود که همون گفتم همون شنیدن آقای آفرینش از درون به همجار رسیده و آرامشی یافته خودمون است به طور گدی اینو دیگه هر کسی میتونه من فیرم میکنم زندگی شخصی خودش میتونه تجربه کنه اینگامی که درون ما آشوب هست درون ما تنش هست های گوناگون و اون آرامشی که از سخن میگیم درون ما نیست خود به خود میتونم هم میگم از درون نمونم آبای درست نمیشنمیم اگر اما آبایی باشه آباهای در همه مخشوشی هست درست مانند همون آبی که گفته میشه وقتی که موج زیاد داشته باشه آدم نمیتونه شفاف درون رو ببینه بنابراین هرچی که آرامش درون رو بتونیم بیشتر برقرار کنیم بنابراین بیشتر میتونیم از از اون در واقع خرده آس نه خرد خودمون ما دو گونه خرد داریم آراهی دارم در جایدی باز میگیم آس نه خرد و گوش و سرود خرد آس نه خرد اون خرد درونی و ذاتی است اون که از درونه هورایی من من میگم میاد بیرون گوش و سرود خرد اون خرد و اون دانشی که به گوش میشنویم و از بیرون میاد که از, از, از به هم پیوستن در واقع این دونو خرد هست که ما یاد میگیریم و میفهمیم و بینش پیدا میکنیم در زندگی پس اون در واقع سروش به گونه اون خرد درونیمون هست آسنخلنمون هست فا. اینجا دیگه ما گفتگوی فلسفی از این اصول رو پایه ها رو به پایان می‌رسونیم و همجور باز من دیگه باز هم میگم تکرار میکنم و این ها به خاطری است باز میگم که بیشتر در ذهن اینا اینها مهمند اینا اون پایای اسلام که ما همه چی رو از درون اینها نگاه میکنیم حالا بیایم از اینجا دوستان یه پلی بزنیم به ترسش و اون پدیده جشن شادی و جشن و سرور و اینکه چرا اینها این همه در این بین اینجا جهان بینی این همه ارزش دارن همیشه صحبت از جشن هست از اینکه در فرهنگ نیاکان ما گامو ماتمو اینها جایی نداشته که البته این هم درست نیست بگیم جایی نداره بر هر حال زندگی به هر روی های رویهای گوناگون خودش داره و هر انسانی در جایگاهی بر حال جای غم و ناراحتی و اینام هست اما نه به گونه در زندگی و اصولی و پایی برکه ما زندگی رو جشن میگیریم و این باوری است که به داشتن امید در زندگی کمک میکنه به داشتن نیرو و انرژی در زندگی کمک میکنه ممکنه از اون ورم اون حالت وارونش هم به گونه نیرو بیاره ولی اون نیروها نیروهای سازنده نیست نیروهایی که بیشتر است و زیانباره و ما به دنبال مصبت ها هستیم و برای اینکه از جشت بیشتر بگیم بیاییم اول از خود واژه جشت حواظ کنیم از کجا میاد خب این جشت هم ردیف واژه‌ای است مثل یسن، یاشت، یزاد، یزاتا، ایزاد، یزدان همه اینا مانند این همانند از سوی دیگه واژه یس، یا جز، یا جاز رو هم ما داریم که از سرود و موسیقی و موزیک میگه که اون هم باز از همین میذینه ریشه اینها یزت است یزت یه واژه هستایی یزکا یعنی ستودنی قابل ستایش قابل عشق گزاری پس رو میشه با این واژه ها گفت و گزارش کرد ستایش و سرود در هر کجا مفهوم خودش رو میگیره در مفهوم دینیش، دینی آینیش مانند ایزد و یزد و اینا در چه ستودنی ها، و حتی خود خداوند رو هم در, در این راستا میاریم یزدان و ستودنی. از سوی دیگه هم در در بخش آینی فرهنگی به اگه بخوایم بگیم ما باز هم جشن داریم جشن داریم تا جشن خاندن آن آن آن آین ها و سنت دینی رو هم بهش میگن جشن خاندن یا امروز آفه میگن خاندن هم میگیم که گونه نیایش هست نیایش گونه است که جنبه همگانی و مردمی داریم و سمنجامون جشنی که با سرود و آباب و آواز و دستفشانی و پایکوبی همراه است اینا نمادهای گوناگونی از جشن هستند از یسن هستند از یشت و یشتن هستند قابل ستایشند و قابل شادی و سرور هستند و در همه این حالت ها و گونیاگونی های خودش اون چی که درونش هست نیکیست، زیباییست، شادیست، خوشی و خوشمگیست از خوشی دیگه میتونیم بگیم خوشی با آزادی هست انسان در آزادی هست که خوش است و با خوش بودن آزاد است. اینا،, اینا هم دست در دست هم دارن انسانی که اسیر است، برده هست، بنده هست نمیتواند خوش باشد باز میگم این خوشی و خوشنودی رو ما در هم نکنیم یکی نبینیم با بی بندوباری، بلنگاری یا بی مسئولیت زندگی کردن بلکه اون رفتار و کردار و شیوه زندگی جشن داره که ما گاهی کامل هم باشه و با مسئولیت برای بهسازی زندگی برای خودش ردیگران این حال ما میگیم قابل جشت گرفتن هست و خوشی هست و اینکه خوشی در روند و فرایند کار و کوشش کرده داره نه در پایانش یعنی که یعنی که خب درست طبیعتاً خیلی ناراحت میشه که ما یک موردی رو میخوایم بگذاریم به پایانش برسیم و در پایان جشن می‌گیریم آیا بخوایم بگیم اما این نباید باعث این بشه که یعنی باید این گونه نگاه کنیم که هر گامی که ما هر قدمی که به سمت در راه درست و به سمت هدف درست برمیداریم و به درستی اون رو تیمی کنیم خودش شاکسته جشن گرفتن در حال داشتیم از جشن و شادی و سرور میگفتیم که رو بگیرن ولی ما رو دوباره برقا میکنیم و بنابراین داشتم از اینجا می گفتم که جشن رو باید هم در آغاز باشه و هم در روند کار باشه و هم در پایان باشه رسیدم به اینجا که فلسفی جشن ها بر جوان شدن همیشه گیست جوان بودن همیشه گیست و این یکی از اصول دیگر اصول و برمایه های دین ما است که بهش میگیم فرش کرته یا فرش کرد. فرش کرد این فرشو همون فرش انگلیسیه. در سوادی زبانی که من روزمره با اصطلاح کار دارم بهش میگن فاش. در واقع همون تازه، نو. No. کرته هم که یعنی انجام دادن کردن. فرش کرته یعنی تازه کردن، جامان شدن. و این تازگری و جوان شدن و نو به نوع شدن در همه سطوح زندگی است. در جامعه، در فرهنگ، حتی در دین، در اندیشه، در زندگی باید با زمان پیش رفت. خب، و این اصلش اصل تفرشش کردن، از تفرشش کردنیه. ما در گاتهها آشوش زدیم. میگه، ای مردم، بیایید از کسانی شویم که این زندگانی را تازه می‌کنند. ای اندیش ای خرد و ای آورندگان خرسندی از راه راستی و درستی بیایید همگی هم رای و هم راه با دانش درونی دارای یک آرمان شویم و آن نوسازی جهان است. خب حالا اینجا یک باز یک گریزی می‌زنم، یک یادآوری می, می به این که در همه این موارد که من براتون گفتم ممکنه به شکیبه های گوناگون هر کسی برای خودش تعلیل تفسیر رو کنم همین فرشوگرد رو فرشوگردی رو برخی به پایان جهان می یعنی آن چیزی که بهش شب روز رستاخیز از گفته میشه ببینید بذارید اینجوری براتون بگم بعد از دید من و حالا خیلی سال دیگه این فرصفه این دین برای زندگی است برای امروز است و بیشتر اینها برای همین زندگی گفته شده و چگونگی که درست زندگی کردم اما خب به دلعادی که اون هم قابل فهمه خیلی از این مسائل به به زندگی اگه بخوایم بگیم به پس از این زندگی و یا به آن جا و آن زمان ها مکانهایی که در دسترس نیست هم کشانده شده که حالا در حال خودش رو میتونه داشته باشه و داره همه به نظر من امروز و اکنون مهم است و چگونگیش مهم است که حتی چگونگی آینده رو هم این آینده حالا چه نزدیک باشه که دور باشه امروز روشن میکنه که چگونه هست برای این رو حیبه آینده مپمت و دور از دسترست واگذار نکنیم و به جبان من این با خواست عشوزرتش و دین بهیم یه فاصله داره از امروز تا همون بی ها و زمان های دور از دسترس و مپن در مورد این خودتازه گردانی و نماد اون که فره هر باشه من به این برنامه دیگر گزارشی بیشتری خواهم باد باید, باید. همونوز غربو که از جشن و جشت ها بگیم و ببیش از کاهانبار من با یک بازنمود یه تعریف کلی آغاز می کنم سپس تا یه هفش دقیقه دیگر سامانگر که یک موزه که دیگهی برابند بذارم و بعد به کاهانبار که درش هستی می و در نشاستی می پردازم و یکی در این موارد میگن ببینید جشن در درازای رسال بسیار جشن ها داریم این جشن ها رو خب امروز میان دوستانی که در این مورد میگن و می نویسن خود منم من این کارو کردم در نوشتم خب یک گروه بندی شده مانند جشن های ملی جشن های دینی و مالند این ها و در این مورد هم گفتگوهای بوده و هست که خب یه گروه اینجوری میگن که خب این جشن ها همه است مال همه ایرانیانه بنابراین ما این جشن همه جشن های ملیه گروه هم که خب اونها میگن بله درسته ولی این اندیشه رو هم بکنید که اگر زرتشتی نبودند و این جشن ها رو نگه نمی داشتند و در نگه داریش از جانده نمی کوشیدند خب این جشن هم امروز نمی ماند بنابراین جشن ها دیست یا جشن های زرتوشتی است در در خب همین که من این رو الان گفتم مختلف میکنم شما هم مثل من این رو ببینید اگه آدم باز نباه کنه که هر دو گروه هفت دارم هر دو گروه هم بخشی از واقعیت رو میگن و واقعیت در کامل بودن خودش از همون خرد اگه نگاه کنیم باز از همه سو نگاه کنیم هر دوی اینها رو در بر میگیره این جشنها است که با ما زرتشتیان گره خورده و با ما به پیش آمده ولی جشنهاییست که هم آغازش مردمی و مردی مال همگان بوده و امروز هم میتونه مال همگان باشه ببینیم که همگان با اینها چه میکنند ولی دست کم تا این دعیه های گذشته نشون داده که این همگان اگر از در حال از درون جامعه زرتشتی نمی اومده بیرون این نگاهبانی شد خب خیلی از اینه از بین می به دشت که نردمی هست است و بیشتر در میان همگان بوده اول یه نگاه کنم نامی ازشون ببرم که خب بیگمان نخستینش و برترینش نوروز هست و بعد جشت مثل مهرگان صده یلدا یا شب چله و این تیرگان هم حالا به گونهی توش اومده دسته در گروه یا زوارانمون در ایران داشتیم که به قول اون جشن آب پاشن که دور هم و آب به سرور هم میگه میپاشن و به گونه این جشن رو گیرامی میدارن این جشن ها همین که از اون برد نگفتن یعنی نوروز، مهرگان، سده، چله و تیرگان اینها ها طبیعی هستند. یعنی چی؟ یعنی درست اون نوعات اوج طبیعت رو و زمان رو و زمان بندی رو در واقع ایرانی جشن میگیره تو میگیره ن برابری بهاریست برابری شب و روز در آغاز بهار است خب؟ آغاز سال است مهرگان درست چیش ماه برشه یعنی آغاز نیمه دوم سال باز برابری روز و شب و برابری پاییزی بهش میگیم. تیرگان میانه پابستان هست به یعنی این یعنی گرمترین زمان سال و از اون بر صده صده سردترین زمان سال هست شب چلده شبیه الدا که تاریک ترین در یا دراست ترین در شب سال است بنابراین اینها با در واقع با طبیعت سرکار داره پیوند مستقیم داره خب یه سری دیگه جشنا هست که از جمله حالا امروز اگه بهش بگیم دینی به گونهی دینی مدی همه دوتاییش هست یکی های ماهیانه است که هر ماهی نام روز و ماه یکی میشه برای برای این جشن میشه که البته همون مهرگان و تیرگان هم جزوی ناست یعنی هر ماهی به نام خودش داشته و داره دیگه هر دیبشنا هر دیبشگان ار مهرگان تیرگان فروردینگان همه اینا هست بعد جشن فروردین روز از فروردین ماه که بهش میگیم ما فرودوک که جشن فره هرهاست یا جشن هماره و که به نوزای فروردین میفته و در اون روز همه به آرامگاه ها میرن و از در گذشتگاهان خودشون یاد میکنن بعد جشن های ما زایش توش رو داریم جشن که بهش میگیم نوروز بزرگ در روز ششمه فروردین یا خرداد روز و فروردین ماه هست جشنه مثل اون پنج روز آخر سال هست پنجه بزرگ پنجه کوچک رو داریم در گذشته از روز رو داریم که هم به گونه جشن روان هست و یادآوری از زندگی و پیام از توش هست و سرانجام گاهانبار ها که روز کمی از گاهانبار ها براتون میگم هما پیش از اون اگر امکان داره باز همحتبیینه که را یک موزیکی برای ما بذارید تا ما هم بعدی آساکی بگیریم بخان. سرود پاکی و نیکی به گوش یار بخوان و در بلوغ خرد یادی از اوستا کن بیا بیا زند بخوان تا سپیده بازر بیا و بیا, بیا و. زند بخوان تا سپیده بازه شکوه جلوی خورشید را تماشا کن بگو بگو که نیک بیندی شد نیک کند گفتا چون نیک شد همه کردار شکر مزدا کن. بیا به عشق نیاخ که سرفراز کهن پیام پاک شرف را به معنا کن بگو که ملت ما سرفراز تاریخ است و دشمنان وطن را خفیف و رسمان. دیان از و شرف را به خانز شهر و رمز و راز شرف نامه را حویده کن نبسته دست تو را فتنهای چرخ بلند مقام خیش در اوجه پماس حویده کن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 سیاوش برامد زحاک بیا به حرمت دل حل این معمه کن تو قطره منم قطره و وطن دریا بیا و قطره جان را نصار دریا کن شوق دیدن فردای و اشق و آزادی به نور دانش امروز فکر فردا کو امید می که از ابر ها بیا امید می که از ابر اتحاد بیا و بوست امید و تمام امید می چه که از بیا و بیاشتان وطن را دوباره احیاق دوباره, دوباره احیاق با درود و سپاسی دوباره بسیار چکامه زیبایی بود دوستان سرای من هست بعد سپاس بذارم خب دوستان تا پیش از اینکه به پرسش رو پاس و خواب برسیم که. پیمان داده بودم در مورد گاهانبان های کوچکی بگم و یک نیایش کوچک گاهانباری هم با جرزه براتون میخوانم و سپس میرسیم به پرس شاباسه ها نخواست از این آغاز رو که گفتم گات یا گاث یا گاس به ترتیب از میشه زبان‌های زبانهای عوستایی تا پهلوی و تا امروزه که گاه و گات میگیم خب در عصب منای همون سروده و چکامه بودند و به تدریج آرام آرام چندهای دیگری مناهای دیگری هم به خودشون گرفتند به گونه‌ای ای که امروز وقتی ما میکیم گاه در سه راستا در سه جا ما رو برایش شما معنا دارید یکی به شکل زمان مانند پگاه شامگاه و مانند اون یکی در جایگاه مکان جا مانند ایسگاه مانند خوابگاه و مانند این ها و همینطور در گاه های دست گاه های موسیقی که خب به این میشه گفت به گونه این نزدیکتر هست و به گونه اینها با گاخانبار هم پیوند پیدا میکنه اگر در این رابطه بگیم که گاخانبار به مفهوم بار گاخان یا زمان گاخان یا گات ها زمان گات ها خانی به گونه‌ای خب بر بوده که در این زمان ها که دوره هم گرد می آمدند و جشن می گرفتند گاتها گاتاها نیز می و از اون گفتگون می کردند یکی می گزارش می دیگران گوش می دادند اونش گفتگون می کردند و این به گونه‌ای هم آموزش بود و هم آواز جشن بود از سوری دیگه مفهوم های دیگری هم به خودش گرفته مانند گاهان بار یا زمان باردادن باردادن به منای بخشش و داد و دهش هست و یا گاه انبار هم بهش گفته میشه یعنی زمانی که انبار میکردند و داشت های خودشون رو از فرآورده های کشاورزی است. روی هم رفته میشه گفتش که آغازگر این ها این جشن ها هم جشنهای بسیار طبیعی یعنی با زندگی کشاورزی و دامداری مردمان در پیوند راستی بوده و این جشن ها هم پنج روز به درازا میکشیده. از یک سو دیگه به اینجا رسیده که این جشن ها اگه بخواهیم بگیم به گونه جشن های دینی شدن یعنی از دیدباه دینی هم اینها به صورت یک خیشکاری به صورت یک حتی وظیفه دینی در اومده بوده که این جشن ها رو باید گرفت چرا که اصل مهم به این جشن ها منطقی هدفش گفتم داد و دهش و بخشش بوده یعنی هرکس که آن کسان که از داده های اهورایی و در واقع دارایی و ثربتی که داشتن بیشتر از حد بودش که برای زندگی خودشون نیاز بود این افزوری رو به گونهی تخش می از این راه میان مردم و خانهای کاهنباری می زشتن کاهنباری راهانباری می گرفتن و در اون سفره ای که میذاشتند و به هر حال حالا یا از خوردنی یا بگونه ای که هر چی که داشتن اضافه و همه هم باید باید شرکت میکردن و در این نشست ها در این سفره ها و خان ها هیچ کس بالا نبود و کسی بالا باشه و کسی پایین باشه همه به دور هم میشستند و همه از سفره صفره میخوردند و همه هم بخشی از اونجا میتونستن. میتونستند با خودشون ببرن و به این ترتیب در اون زندگی هایی که به گونه هم نزدیکتر به هم بود و همه به گونه هم می که نیاز داره که نیاز نداره نیاز هم دیگر رو برآورده می کردن. و در این جوامع آنچنانی اون تعداد و همه, همه هنگی و اندازه بهتری برقرار بود بین مردم خب بعدها به گونه این, این ها رو نمادهای دیگه ای هم برش گذاشتن از جمله شدن جشنهای بزرگ داشت آفرینش و این آفرینش رو که در شش یا هفت برقی میگن شش برقی میگن هفت در شش گامه یا مرحله شده اینها رو هم به این جشنها نسبت دادن که به نظر من اینها اینها قدیمی است اینها جدیدتره و پس از در واقع مجوز تحصیل گرفتن و تاثیر پذیرفتن از دین و این های دیگری ای بوده که اینها هم به گونه ای روش گذاشت بد <time> البته ما در برای نمونه در بندهش داریم بر کتاب های اخرین دیگه ای داریم کتاب های قنادوی یک چیز دیگر هم من بگم. ما وقتی از آفرینش کرده بودیم، بر من گفتم، میدم پیدایش بهتر بگیم یعنی همچنین گفتم آفرینش از هیچ نیست، بلکه از یک شکل به شکل دیگری پیدایش پیدا میکنه. در این شش مرحله، شش گامه نخست آسمان بوده، سپس آب، زمین، گیاه، جانور. و انیسان در برخی جا آمده که هفتمی هم آتش بوده که در برخی که اون آتش رو میگن نو روز رو به اون آخرین آفریننی آتش و بزرگ داشت و اون رو مربوط میدونن برخی هم میگن که اون پنج روزی که در واقع این جشننابت رازم میکششته اون من به آتش هست. آتش به معنای مفهوم نیروی در واقع درون این پیدایش ها. یعنی از یک شکلی از هستی به شکل دیگری در آمدن یک, یک تغییراتی هستی دیگری هست که در واقع اون آتش آتش درونشه خب حالا اگه نام کچکی هم بخوام نامی ببرم از این گهنبار ها ما که این بار نخستینش میدی و زرم هست یا میان بهار بعد میدی و رو داریم میان تابستان پایتی شاهین رو داریم پایان تابستان و ایاسرم رو داریم که الان اکنون هستش میشه گفتش که آغازی زمستان میدیاریم. گاه یا میانه سال یا میانه زمستان و پایالی شمه از اون هم از پت میدین گاه که با, دو با نوروز در واقع یکی میشن پس اینم نام های این گاه بارها و خب حالا در قدیم گاته ها می کندن. امروز هم میشه به گاته ها خوند هم ما آفریگانی داریم یعنی به نام گاهانبار که خونده میشه آم... که من این رو به کوتاهی الان یه بخشش رو فقط سراتون میخونم که پایان بخش این بخش گاهانبارمون باشه ای آفریگانی هم خونده باشیم که آن را از اون بخش های نخستینش من میذارم به اون بخش خود این گاه ایاسر هم که میرسه میگه نبعده یه مهی حنکاره یه مهی رتو رزتو یو اشهه رتبان ایریه نامچه اصنیه نامچه ماهیه نامچه یا ایریه نامچه سرزه نامچه یو ای هنتی اشهه رتبو लेबैदा ये मही अंकौर ये मही यायरी ये راتو अशहे रातो बियो लेबैदा ये मही अंकौर ये मही हयो श्री मही सराव रु یا سری مهی ردفو یسنای چه و احمای چه اشنا و ترای چه ترسسته یچه اشم و اشتم استی و اشتاو و و هست نبید میدهیم انجام آین بالایی را که از آن راستی و درستی است و از آینهای راست و درست روز شبان روز ماه گاهانبار و سال میباشد. نوید می دهیم و انجام می دهیم را که از آینهای راستی و درستی میباشد. نبید میدهیم و انجام می دهیم که همبار ایاسرم را که نیایش پاییزی و خوش آمد زمستان است و با جشن ایاسرم گرامی می داریم خدای دانا را و او را بزرگ میخوانیم خشنمود می, خانیم و, شنود می سازیم و به ستایشش میتبرازیمیم راستی بهترین نیکی است، خرسندی است، خرسندی برای کسی که راستی را برای بهترین راستی بخواهد. عزیزان دوستان، گنبار ایوا سلامتون هم خوشباد و زمستان خوشی هم در پیش داشته باشید. پس یارانیکو خب اجازه بدهید که حس آرام آرام بپردازیم به بخش پرسش ها آم بسیار خب این پرسش ها رسیده من اونهایی رو که شدنیست پاسخی خواهم داد پرسیدم که ارزش های اصلی در دین به هیچ هستند خب من گمان میکنم که این سه هفته با تمام تلاشمون داریم بود که این ارزش ها رو به گونه بگیم البته بیشه خیلی ارزش های دیگری هم نام برد اگه بخوایم بریم تو جزئیات ولی اگر بخوایم به طور کلی بگیم خب همیشه و گفتار که کردار نیک که بعد هر کدوم از اینها میتونه بیاد و ریزتر بشه و جزئیتر بشه و درانش سخن داد. ارزش اصلی همون هم شاسپندانی هستند که براتون گفتم اشایی راستی درستی اندی نیک، اه، اه، چیرگی هورایی یا شهریاری هورایی و و, و. اینها به نظر من ارزش های اصلی هستند دیگه در این مورد بیشتر گفتگو میکنم و در گفتگاه دیگری هم که خواهیم داد اینها هارومر رو همه اینها میاد. ما نده برایری اگه بخواییم بگیم خیلی چیزها رو میتونیم زیرش بیم برابری انسانها برابری زن اومد تازه شدن همیشگی آشتی آرامش و, و و و و خب اینا در گفتوهای دیگه بیشتر باز خواهد شد سپاس کذارم از پرسش کرد گیرم و سپس درست دیگری دیگر پرسیدن که یک واجهی هست و نا این در حاط 32 بخش حق اومده و به آزمایش با فلز گداخته ترجمه میکنن چی هست و منظور چیست آره میدونم چی میگید توست و بلکه از این واژه ها برای اون که به همین ترتیب ترجمه شده در, در موردش هم گفتگوهای زیادی بوده البته این رو بیشتر کسان امروز بر این باورند که حالا اگر در اون زمانی که این گفته شده بدون شک بی تحتید برای گویندهاش و کسال که نوشنیدن اون زمان این شناخته شده بوده حالا به چی گفته می شده دقیقا امروز شاید نتونیم بگی مت اما به گونه این رو برمیگردونن به آزمایش زندگانی یعنی اینکه آ در کوره در واقع زندگی پخته میشه و مانند فلزی که می گدازانش یعنی. درجه شو بالا میبرند گرماشو بالا میبرند تا اینکه که گداخته بشه و سپس میشه سخت میشه خب انسان هم در این آزمایش گدازاننده زندگی میتونه سخت تن بشه و به گمان من هم منظور همین هستش اگر چیز دیگه ای گوینده هستی از, از رو در نظر داشتند من نمیدانم. وقتی به روی خیلی میکنم همین باشه پرسشگر دیگری پرسیدن که آیا این هفتم امشاست بندانی که میگویید همان فرشتگان عدیان مسیحی، یهودی و اسلامی نیست؟ گمان نمی باشه. یعنی ممکنه بخشهایش رو آدم بخواد به گونه بیاد و با هم بسنجه و بگه برای نمونه بخواهم بگم خورد آدم خاروت و مارود که اینها فقط یک چگونه بگم؟ یک... <تصفيق> یک کپی نادرستی بوده یا به شیوه خودش بوده در نهایت ولی در معنا مفهوم محفوم من فکر نمی که بشه گفت به طور کلی و همه دقیقا همون محفوم ها رو دارن و همون معانی رو دارن و اینکه فرشته به طور کلی خب ما از اون دیدگاه ما فرشته رو نداریم یعنی فرشته به آن معنی که موجوداتی هستند حالا بابال یا بیبال یا هر گونه بخوایم بگیم که بین بین خداوند و حالا به پیامبران و سپس انسان ها رفته آمد می کند خب, خب دیدگاه دیدگاه میشه گفتش که زرتشتی خب نیست یا زرتشتی می خواهیم بگم گاتاهایی نیست در واقع بنابراین پاسخ من به طور کلدی میتونه باشه که نه همون فرشته ها نیستند ولی حتما میشه یک شباهت هایی در بعضی جاها پیدا کرد پرسشکر دیگری پرسیدم که آیا هوم سکراور هست من هوم را در مراسم واجیشت بارها خوردم ولی ایش اثر سکراوری نداشته و این که مخالفت اجوزتش با نوشیدنی سکراور هست یا تنها با آن مراسم خوربان اینجا دوست گرامی واجه رو به کار بردن واجه یشته برای کسایی که نشنیدن یشت به صورت یک امروز به صورت یک مفهوم همون نیایش کردن در اومده که فیل، اصلا فیض یا کردن ازش درست کردن یعنی یشتن یعنی یشتن یعنی که نیایش کردن واج یا واج یا باج همون آوا صدا واجیشت یعنی نیایش بخواییم بگیم در مراسم آفرینگان خانی و یسن خانی یسنا خانی به میجه بهش میگن که آره اون حومی اون که امروز در دست رس هست اولا که ظاهرن اون حوم اصلی و قدیمی نیست اون یک گیاه دیگه ای بوده این گیاهی هم که امروز هست و میکوبند در نهایت خب میتونه اثراتی از افترین درش باشه افترین هم یک ای هستش که میتونه قدید در این قرصهایی که مسکن درد هست رو اینا افترین داره ولی خب راستش خود من شاید یک بار فقط این رو نوشیدم خب به قدر شما من هم چیزی ازش احساس نگردم اینه که نه امروز امروز هم اون اثر رو نداره و این که مخالفت از جزرتش با اون حالت سکراوریش بوده یا مراسم قربانی خب میشه گفتش که هر دو یعنی به گونه ای اون, اون, اون حالتی که اون چیز اولی میورده هم اولیه میورده یا به هرهاد اون شرطی هم شده بوده دیگه یعنی اون مراسلی که باشه اجرا میکردن با خوردن اون نوبت قربانی میپرداختن، خود خود شاید اون حالتش رو هم میکرده درشون ولی بیگه من اشو زرتوش چون این دورو با هم میدونست و در پیوند با هم میدونست با هر دو مخالفت بیاده حالا باز اگه این پرسش های ای رو پیش بیاری که آیا برای نمونه خب این هم پرسش ها هست آیا در دین زرت مینوشیدن مثلا درستی یا درست نیست و چقدر باید نوشید چقدر نباید نوشید که پاسخ کلی این هستش که اولا قصد با تندرستی و روان است. و همجایی گفتم اون چیرهی یا خشترهایی که از صحبت صحبت من منقام که خشترهای دست بره اون چیرگی به خیشتن و کنترول خیشتن دست بره اونجا از اون حالت امشاست بندی آدم اومده بیرون بنابراین تا جایی که کنترل هست و تا جایی که زیانبار نیست و نتایج زیانباری نداره خب اوکی هست هر وقت از اون بره بیرون بنابراین از اون با اون است هم به زدیت پرداخته و پاده اون هست بنابراین درست نیست دوست دیگری گفتم که میخواستم از صرف من از یاقوب تشکر کنیم بابت بعد اون گرچین نیایش خواهش میکنم یک نیایش نمونه داره به اسم نیایش نمونه یک... نمونه یک وقتی اون رو میخونم حسنم خیلی خوب میشه اونا رو پاوز نوشتم و همیشه امراخ دارم هر مولی که حالا خوب نیست اون رو میخونم خیلی آرامش باشه خب سباز کدرم عزیزم برحال این این نیایشام روی گفتم اه... نخستین اه... کاری که میپنه وقتی که آدم بهش رو بیاره و از به خود من رو پس تعدد بخونه خب بهش آرامش میه و در اون آرامش هست که سپنتایی آدم میشه سپنتا آرمیتی به قول معروف یکی از ابزارش نیایش ها هستش بنابراین منم خیلی خورسندم که به شما هم این آرامش رو میده دوست من امیدوارم که روز و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید که هم بارتونم باز شاد باشه و از بار دیگر به هر حال به مسار دیگر خواهیم پرداخت و در این میان هم باز اگر پرسش ویژه دیگری هست که میتونید پیش از رسیدن به به دیگر هم به گونهی یا برای ایمیل خود من بکرستید یا برای سامانگران که به رسی من برسونن که در موردش گفتگو کنیم همه دونا به هور بزرگ میسپارم و براتون آرزوی تندرستی و شاد کامیده روز روزگار بر شما خوز برات خدا میگهدار